قین منو رزا پیاده شده بودیم. از سریا و نامزدش خدافزی کرده بودیم. سریا شماره خونش رو داده بود بهم. به پیاده که شدیم رضای مغازه کوچک نشونم داده بود سر خیابون قزوین. گفته بود آب میوه ها و بسنیاش عالیه. رفته بودیم نشسته بودیم تو مغازه خیلی کوچیک بود. آب هویج وستنی خورده بودیم. تو لیوانای خیلی بزرگ. من تا حالا اونجوریشو نخورده بودم. با داییم شاب لظیم رفتنی بستنی میخوردیم یا تو بازار تجریش ولی اونجوریش رو نخورده بودم من تازه فهمیده بودم آب آبهویج دوست ندارم ولی همه خورده بودم تونتون تون خورده بودم اون آروم خورده بود با من حرف میزد من فقط سرم رو تکم میدادم داشتم تونتون آبهویج بستنی ما میخوردم به این فکر می کردم که چرا بستنی رو به آبهویج قاطی کردن جدا جدا بخوریمشون بخوری از پرسیده بود هویج بستنی دوست دارید لیوانمو سرکشده بودم گفته بودم نه زیاد آبزرشک بیشتر دوست دارم خندیده بود گفته بود ای وای ببخشید من اصلا نپرسیدم ازتون اینو سفارش دادم اب نداره الان آبزرشکم میخوریم گفته بودم نه نه نمیخورم دیگه دست شما درد نکنه دیرم شده بلند شده بودم کیفم و انداخته بودم رو دوشم اونم تندی بلند شده بود حساب کرده بود پولشو اومده بودیم بیرون اصلا ساعتمو نگاه نکرده بودم تا اون موقع عینی خیالم نبود ساعت تو مغازه دو روب بود دویده بودم طرف ایستگاه اتوبوسی که اونور خیابون بود اونم دنبالم دویده بود همشون گفت پری خانوم یکم آرومتر برید من الان ماشین میگیرم میرسونم من گوش نداده بودم به حرفش تو اون تو بودم طرف ایستگاه داشت نفس نفس میزد گفته بود چرا با اتوبوس میخواید برید؟ خب بذارید دربستی بگیرم براتون دیگه رسیده بودیم تو ایستگاه یه خانم با بچهش تو ایستگاه وایساده بودن وایساده بودیم تو ایسگاه. کیفم اون کرده بودم خیره شده بودم به زمین گفته بود چرا یه ای اینجوری شدید؟ خب هنوز که خیلی مونده تا شب چرا نگرانید؟ نگاش نکرده بودم نمیدونم چرا اون شده بودم؟ حالم خوب نبود دلشوره داشتم تو دلم رخت می شستن. هی hey, تو دلم به خودم فوش می دادم. واسه اینکه باورش رفته بودم آهو خورده بودم واسه اینکه باورش رفته بودم با ماشین این ور اون ور با دوستش و نامزده دوستش فکر کنم ترسیده بودم فکر کنم می ترسید با هم حرف بزنه آروم گفته بود از دست من عصبانی هستید سرم آورده بودم بالا یعنی نه گفته بود پس چرا حرف نمیزنید نمیدونم چرا حرف نمی‌زدم خدامم نمیدونم چرا اونجوری شده بودم گفته بودم من همیشه اینجورییم هم. الان درست میشم دروغ گفته بودم گفته بودم از اینجا اتوبوسای طرف خونهٔ ما رد میشه گفته بود فکر کنم رد میشه اگه هم نشه من میرسونم نگران نباشید اون زنی که تو بود همش به ما نگاه میکرد اینکه من خولم درسته ولی هیچ هیچوقت اونطوری نشده بودم شاید چون تا حالا با پسری نرفته بودم آب همیچ بستنی بخورم تا حالا هیچ پسری به لبخند نزده بود نگفته بود به من افتخار بدید اصلا هیچ بسری با من حرف نزده بود. نگام نکرده بود. گفته بود: "یه سوال بکنم؟" با سر گفته بودم: "آره." شروعشو رو درآورده بودم دیگه. اه! Ah, چرا اونجوری رفتار کرده بودم؟" گفته بود: "خب اینطوری میکنین من احساس میکنم از من ناراحتید." از اون ناراحت نبودم. گفته بودم: "سوالتون چی بود؟" گفته بود: "میخواستم بدونم کلاس چندمید جسارتن. خرسم در اومد. گفته بودم: "برای چی می‌پرسید؟" اخم کرده بودم. بیچاره گفته بود: همینطوری میخواستم سنتون بپرسم ببخشید اگه ناراحت شدید همش ازم م عسخرایی میکرد گفته بودم شونزده سالمه اولی دبیرستانم یعنی تموم کردم میرم دوم مونده بودم بهش بگم یه سال رد شدم یا نگم رومو کرده بودم اونور مثلا منتظر اتوبوس بودم اونم دستاشو کرده بود تو جیبش به زمین نگاه کرده بود یه چند دقیقه هیچی نگفته بود من تقریبا پشتم کرده بودم بهش الان خجالت میکشم از رفتارام میخوام خودم خودمو خفه کنم. آ، من عقده‌ایم فکر کنم. نمیدونم که گفته بود: "پری خانم، دلم هر ریخته بود پایین." برگشتم طرفش. قیافش خیلی ناراحت بود. فکر کنم از اینکه ناراحتش کرده بودم خوشحال بودم. گفته بود: "اگه حرفی زدم یک کاری کردم که ناراحت شدید، معذرت میخوام اینجوری که گفته بود نمیدونم چرا علکی می‌خواستم خودمو ناراحت نشون بدم. فکر کنم داشتم خودمو لوس میکردم. گفته بودم: "باشه، اشکال نداره." بعد اتوبوس اومده بود، سوار شده بودیم. تو اتوبوس دوباره حالم عوض شد. ناراحت بودم که باهاش رفتاری کرده بودم. دلم میسوخت براش. اون طرف مردا وایستاده بود. منم طرف زنان نشسته بودم. زیاد و رو نگاه نکرده بود منم دیگه اخ نکرده بودم. خوشحال بودم که باش سوار اتوبوس شده بودم وقتی رسیدیم ایستگاه ما بهش اشاره کرده بودم پیاده بشه. من دیگه واسه اینکه ناراحت نشه بهش نگفته بودم که از اونجا به بعد نیاد باهام. دیگه تو محلمون بودیم. چهار تا کوچه پایینتر خونه ما بود منم این خیال نبود که باش تو محلمون راه برم تازه خوشحالم بودم کنار هم راه رفته بودیم از جلوی مغازه پسرموی بابام رد شده بودیم به بابام اسمش آقا سابره مغازه لوازم خانگی داره. من گیج بودم اصلا حواسم نبود که ممکنه او ما رو ببینه یا نمیدونم الرا مهم نبود نمیدونم من نقل درست حسابی ندارم که آقا صابر تا ما رو دیده بود پریده بود بیرون من یخ کرده بودم. آب دهنم خشک شده بود. مونده بودم چیکار کنم. رضا گفته بود چی شده پر خانوم هیچی نتونسته بودم بگم. آقا سابر پریده بود بیرون از مغازش من همین طوری خوشکم زده بود نمیدونستم چی کار باید بکنم. دلم نمیخواد به اون لحظه فکر کنم کاش همون موقع زلزله می یه چیزی میافتاد رو سرم میمردم یا وقتی از اتوبوس پیاده شده بودم یه موتوری میزد به بهم قبل از اینکه سابر ما رو ببینه صابر گفته بود پری خانوم این آقا کیه با شما داره را میاد؟ خیلی بد گفته بود. من فکر کردم میخوااد منو بزنه بعد من یه چیزی گفته بودم که گلوم درد میکنه دارم هق, هق گریه میکنم. آی دلم دستم میذارم میزارم رو زمین سرم رو میزارم رو دستم سلام داره میترکه گشنمه دلم قار و قور میکنه ساعت چنده کاش از گشنگی میمردم اینجا مامانم اینا دو وجدان میگرفتن کاش جین ایر بودم هیچکسو نداشتم هیچی به ذهنم نرسیده بود اون موقع گفته بودم دوستمه مامانم همیشه میگه وقتی خدا و تقسیم میکرده تو صف مو بودی تو یعنی عقل ندارم ولی یه عالم مو دارم. اوفای پری خاله من از خرم خرترم. رضا پرسیده بود ایشون کی هستن پری خانوم؟ آروم گفته بودم پسرعموی بابام. آقا صابر گفته بود شما برو خونه ببینم. سرم انداخته بودم پایین، اومده بودم خونه. تونتون اومده بودم. تنم یخ یخ بود. قلبم تون زده بود. فکر میکردم الان میتره که قلبم از بس تون میسد. خونه که رسیده بودم، حاجی خالم خونمون بود. خاله مامانم. از در حیات که اومدم تو دیدم که نشسته تو اتاق جلویی پرده های اتاق جلویی رو زده بودن کنار از تو حیات خونه معلوم بود رفته بودم تو حاجی خالم که دیده بود منو تو حیات هی صدام کرده بود گفته بود بیا دخترم بیا بالام بیا جانم رفته بودم تو اتاق بغلش کرده بودم نشسته بود بالای اتاق زیر تاقچه. رو تاچکچه ای که مامانم براش بهن کرده بود حاجی خیلی پیره یه بویی هم همیشه میده خیلی سفیده شیر برنج از شیر بدم میاد موها و انگشتاشم حنا میذاره همیشه. مام بزرگم هم همین جوری بود. حاجی خاله‌م سیبیلم داره یکم. مثل مردا نه ولی یکم داره. تون گرم و یکوت قهوه‌ای پوشیده بود. همیشه مریضه، کلیه درد داره. هر وقتم میاد خونمون به من پول میده. داره. جایی ماچاشو رو صورتم پاک کرده بودم. بدم میومد بوسم کنه. مامانم نشسته بود جلوی پرده‌ها پشتش به بود. نشسته بودن تالبی می‌خوردن. شایدم بود، نمی‌دونم. آروم به مامانم سلام کرده بودم. عصبانی نبود اصلا. نمیدونم یادش رفته بود که من دیر کردم یا نمیخواست جلوی حاجی خاله چیزی بهم به بگه. ساعت 3 بود. من رفته بودم تو اتاق عقبی. حاجی خاله بلند گفته بود: "پس کجا رفتی؟ بیا بشین ببینم چیکار میکنی دختر." ترکی گفته بود. چون خودش گوشش سنگینه بلند حرف میزنه. گفته بودم: "الان میام، لبسامو عوض کنم میام." ترکی گفته بودم. خیلی خوب بلد نیستم. مامانم خیلی ترکی حرف نمیزنه در اتاق قبی رو بسته بودم خم شده بودم رو زمین ترم داش میلرزید سرم گذاشته بودم زمین گریه کرده بودم مامانم اومده بود تو اتاق گفته بود چی شده پری چرا گریه میکنی ها پری چی شده مامان اومده بود نشسته بود پیشم تکونم میداد ترسیده بود فکر کنم گفته بودم هیچ چی دلم درد میکنه حاجهخاله کی اومده گفته بود تازه اومده دای جانت آوردتش گفته بودم میخواد بمونه واسه شام میمونه مامانم گفته بود آره دیگه باید نگهش داریم دیگه گفته بودم اه سرم کوبیده بودم زمین مامانم گفته بود یواش زشته میشنوه تازه اون بیچاره که تو رو اینقدر دوست داره سرم بلند کرده بودم گفته بودم به جهنم اه مامان من دلم درد میکنه حالم خوب نیستا میخوام بخوابم صدام نکنیا. دوباره سرم گذاشته بودم رو زمین مامانم تکونم داده بود گفته بود فکر کنم برات خاستگار پیدا کرده پری بعدم خندیده بود گفته بودم بیخود کرده مامان برو میخوام بخوابم مامانم زده بود پشتم گفته بود به جهنم گفته بود مثل سک شده دختره باشون رو تو بخور بعد بخواب شکم خالی نخواب بعد رفته بود بیرون من رفته بودم تاشمزخونه تونتون غذه خورده بودم بعدش رفته بودم بخوابم اما خوابم نبرده بود همش به این فکر کرده بودم که آقا صابر با رزا چکار کرده چی بهش گفته میترسیدم بیاد خونممون به مامانم بگه تنم یخ بود هنوز امروز صبح این حاجی خالمو برده بود خونش. زندایییم با دخترش مونده بودن خونمون. من خواب بودم. تو اتاق عقبی. یهو چشامو باز کرده بودم. فکر کنم از صدای زنگ بیدار شده بودم. دلم هوری ریخته بود پایین. دلپیچه گرفته بودم. ساعت ده و ده دقیقه بود. همینطوری نشسته بودم تو جام. داشتم گوش میدادم ببینم کی زنگ در درو زده. نمیدونم کی درو باز کرده بود. صدای کیمیا بچه دایییم داش میومد. زندایییم داشت آرومش میکرد. ده دقیقه بعد این طورو از جون بلند شدم رفتم تو راهرو زنده این بچه بغل تو اتاق جلویی وایساده بود لایه پردر رو یکم باز کرده بود داش حیات رو نگاه میکرد. داشت داش بچهشو تکون میداد. رفته بودم تو اتاق سلام کرده بودم گفته بودم کی بود زنگ زد زنده ای پردر رو زده بودم کنار آقا صابر بود تون تون نفس کشیده بودم قلبم داشت از جاش کنده میشد. زنده یه چیزی بهم گفته بود که نفهمیده بودم یعنی نشینده بودم هواسم نبود داشتم سکته میکردم فکر کنم فکر کنم زندایم گفته بود میبری کیمیا رو اونور یا گفته بود میبری کیمیا رو با هم صبونه بخورید درست نفهمیده بودم من جوابشو نداده بودم یعنی اصلا حواسم نبود چی میگه الان دارم فکر میکنم حتما میخواسته راحت تر به فضولیش برسه اومده بودم تو اتاق عقبی. نمیدونم زندایم اون لحظه که محلش ندادم چیکار دو دستو نشسته بودم رو تخت خوابم یعنی افتاده بودم دستمو گذاشته بودم رو زانو. خیره شده بودم به فرش، یخ کرده بودم، گلوم خشک شده بود داشتم به این فکر می کردم که دیگه چجوری زندگی کنم بعد از این فکر کنم سکته کردن اینجوریه چون احساس می کردم دهنم سر شده نمی تونستم آب دهنم رو بدم بدم. آب دهنم از یه طرف دهنم داشت می بیرون سکته کردن اینجوریه فکر کنم مامانم محکم در اتاقمو رو باز کرده بود من پریده بودم از جام مامانم چادرشو پرس کرده بود یه طرف داد کشیده بود چه غلطی کردی مردشوری برده دیروز کدوم گوری بودی از کدوم گوری اومدی دیروز خدا لعنتت کنه با کی رفته بودی کجا رفته بودی هی hey, دو دستی زده تو سرم من دستمو گذاشته بودم رو سر و صورتم مامانم هی hey, میزد تو سر و صورتم زندایم دویده بود اومده و تو اتاق جیغ کشیده بود یا حضرت عباس چی شده دختر تو چی شده مگه چیکار کرده خاک به سرم ولش کن یه دقیقه اون موقع داشتم به این فکر می کردم که کیمیا کجاست چرا صداش نمیاد بعدش کیمیا اومده بود تو تاق چسبیده بود به پایی مامانش همینطوری جیغ میکشید یه بند مامانم دندوناشو به هم فشار داده بود و هی محکم زده بود تو سر و صورتم داد زده بود آبرومونو برده معلوم نیست با کی رفته چه غلطی کرده خدا لعنتت کنه بگو چه غلطی کردی خونهش رفتی؟ سنده زده بود تو سرش جیب کشیده بود گفته بود ای وای خواهی که تو سرت پرید چیکار کردی اسیر دست مامانم در رفته بودم اومده بودم بالا اومده بودم اینجا فکر کنم وقتی داشتم می دویدم پای کیمیا رو له کرده بودم یه که اشک از چشمم می ریزه خوابم برده بود سنده اومده بود تو انباری بلند میشم شم می سینه غذا تو دستشه میزاره زاره جلوم. میگه بخور خور دختر گفتی گفت دیشبم شام نخوردی شروع میکنم به خوردن زندایی میگه یواش چه خبرت دختر الان خفه میشی صرفم گرفته ناهارمون رشته پلو بوده فکر کنم زندایی درست کرده مسی قصی مامانم رو نمیده نمیتونم همشو بخورم زندایی میگه آبم بخور انگار میخواد مثل گوسفند سرمو ببره یپاشو برده زیر اون یکی پاش مثل مردا نشسته میگم زندایی ساعت چنده میگه پنج و نیم ساعتو چیکار داری؟ بگو ببینم چیکار کردی کجا رفتید چیکار کردید پسر کیه چند وقته با زندایی به خدا من باش دوست نیستم رفته بودم عکسای تایی جونو که داده بود چاپ کنه از عکاسی آره میدونم، تو عکاسی کار میکنه، بردنش کلانتری دیروز، آقا صابر با آقا اموج بردنش کلانتری ازش آقا امو؟ چرا با آقا امو؟ داره باز گریم میگیره، دلم کباب شده واسه رسا سنده خوشحال انگار، یه جوری با خوشحالی تعریف میکنه، سنده میگه پس چی؟ آقا صابر رفته به آقا عمود گفته با هم پسر رو بردن کلانتری ازش تعهد گرفتن پسر پورو پورو برگشته به عمود گفته میخوادت تو چرا به آقا صابر گفتی دوستین با هم خیا نداری چطور رود شده آبرو نداری دیگه گفته میخوادت گفته منو میخواد رضا می‌خواد با من عروسی کنه یعنی یعنی از من خوشش اومده فکر کردم تو الان دیگه حالش ازم به هم خورده همش فحشم داده حالم خوب میشه یهو یه زندایی میگه میشنوید چی میگم هی hey! چی گفتی زندایی میگم شب عمود با آقا سابر میان اینجا ببینن باید چیکار کنن میگم یعنی مثل خستگاری و... خاستگاری چرا حرف مف میزنی کدوم خاستگاری مثل اینکه باورت شده پسر میخوادت چرا خودتو زدی به نفهمی خب مگه من چیکار کردم که میخوان ببینن چیکار کنن مگه چی شده آقا چرا باید بیاد زاین دندوناشو فشار میده به هم میگه خیلی پر روی پری پا شدی با پسر غریبه اومدی در خونه اون وقت آروم میگم در خونه نیومدیم تا هر جا بعد میگی مگه چیکار کردم میخاستی چیکار کنی دیگه میخاستی بیایش خونه تون سندیم خودش آبرو مابرو نداره خودش حیا نداره با این حرف زدنش خجالت میکشم از حرفش انگار نه انگار حرف بدی زده همشون همینطورین یه حرفایی جلوی همه میگن که نباید بگن هم زنداییم هم خواهرش چند بار مامانم به داییم گفته بود به مهناز بگو حرف زدنشو درست کنه زنی که دوتا بچه داره باید اینطوری حرف بزنه داییمم گفته بود چیکارش کنم درست نمیشه اینجوری بار اومده زنداییم میگه تازه آقا صابر به تلافی اون دفعه که پسرش نصف شبی پریده بود تو حیاطتون شمام قال را انداختین و به عمود گفتین و جلسه تشکیل دادین اومده به عموت پسرش پاینده تو حیات ما کدوم پسرش کی پریده؟ چرا اوه وح تو هم که تو باغ نیستی. بله دیگه اگه پی دوست پسر بازی نبودی میفهمیدی دورور چی میگذره صدای مامانم داره از پایین میاد داره زندهایمون صدا میکنه صدای گریه بچهش داره میاد داره چیغ میکشه دلم میخواد زندهایمون خفه کنم. صندهیم چشو ریز کنه میگه راستشو بگو تسمس نزده بهت کاری کردین؟ بگو من به مامانت نمیگم. بلند میگم زندایی یعنی چی؟ چرا اینطوری میگی؟ دفه از جاش بلند میشه رفتی کیفشو کردی داداشو سر من میزنی دادو بیداد نکنا آبرو نذاشتی واسمون داییت میخواست بیاد بگیرتت به باد کتک من نذاشتم دستشو به طرفم تکون میده که یعنی خاک تو سرت منو باش واسه خانوم قضا آوردم دلم براش سوخته میره بیرون در محکم میبنده کاش میمردم دراز میکشم رو زمین دستمو میذارم زیر سرم به سقف خیره شدم قضا رو مامانم فرستاده میدونم هیچ وقت نمیذاره گشنه بمونم اگه مامانم اینجا بود زنداریم نمیتونست اینطوری حرف بزنه عمومم خبر کردن میخوان ببینن چیکار باید بکنن میخوان درباره من حرف بزنن دیگه روم نمیشه عمومو ببینم دیگه عیده نباید برم خونه هرچی فکر میکنم یادم نمیاد پسر آقا صابر پریده باشه تو خونه ایمون نصف شبی برای چی عمر تو اتهام خیلی بچه بودم فقط یه پسرش رو یادمه که معتاد بود معلومه وقتی مامان من هیچیو به من نمیگه از زنده این بدم میاد. از دااییم بدم میاد از فرش هم همینطور از داداشمم هم من بدم میاد پا میشم میرم دستشویی. دستشویی؟ پایین پله های بهارخوابه صورتم انگار ورم کرده. تو توینه دستشویی دیدم. میرم دوباره تو انباری فکر کنم از این به بعد باید همین زندگی کنم. درست کشیدم رو رخت خوابا هوا تاریک شده. چراغ روشن نکردم از این به بعد تو تاریکی زندگی میکنم. باشم شایدم خودمو بکشم نمیدونم شایدم با رضا فرار کنم از چی من خوشش اومده شایدم علکی گفته گفته میخوادتم. ولی مامانم منو بهش نمیده اگرم میخواد حالا که آقا صابر ما رو با هم گرفته با انگشتم رو هوا می مرده شور برده دارم به این فکر میکنم که یعنی چی وقتی به یه نفر میگیم مردشور برده مثلا یعنی یه عده میان مردشور آدمو با خودشون میبرن که اون مردشور شور نتونه دیگه ما رو بشوره خب یه نفر دیگه میشوره این که فوش نیست پس. آها. شاید یعنی این شور ما رو میاد میبره میشوره. مثلا ما مردیم اون میاد ما رو میبره میشوره. خب همه وقتی بمیرن مرده‌شون میاد میشورتشون. بازم فوش حساب نمیشه. داداشم ول کرده رفته. ما رو ول کرده رفته. شاید اگه نرفته بود الان قرار نبود امون بیاد تا تکیف من روشن کنن، زندای اون حرف رو بهم به بزنه، فرش فرشته‌حسدی بزنه تو صورتم. اگه بابام شاید داداشم ول نمیکرد بره. ش مامانم به حرفام گوش میکرد نمیدونم اآقا صابر به مامانم چیا گفته مامانم به حرف همه گوش میده به جز من نور چراغ میافته تو چشمم یه چشممو باز میکنم خوابم برده بود مامانم اومده تو انباری من خابیدم بالای رختهخوابا بلند میشم بیام پایین از رخت خوابا مامانم بعدش میاد میرم روشون آخ کلم کلم محکم میخوره به سقف اینجا خیلی کوتاهه آی واایستادم سرم انداختم پایین فکر کنم اومده بازم بزنتم صورتم هنوز درد میکنه از صبح بدنم درد میکنه پاشو بیا پایین شامتو بخور صدای مامانم عوض شده ترسناک شده کش مرده بودم مامانم مردمو پیدا میکرد آروم میگم نمیخورم میل ندارم زر علکی میزنم خیلی گشنمه من مثل یه ها غذا میخورم مامانم همیشه میگه میگه گفتم پاشو بیا اصلا میذارم رو گلوم گلومو فشار میدم نمیدونم پایین کیا هستن نمیدونم ساعت چنده میترسم برم پایین امون پایین باشه نمیدونم پایین چه خبره میریم پایین صدای هیچکس نمیاد از پایین مامانم پایش درد میکنه آروم آروم از پله ها پایین میره من پشت سرش دارم میام کاش پله هامون تموم نمیشود یا من وسط پله قش کردم نمی رسیدم پایین هیچ وقت دل قش نکردم ولی تو این فیلم ها مردم خیلی راحت قش می‌کنن. همیشه دلم میخواست یه بار قشنگ کردم. تو خیابون یا تو خونه. دلم میخواست یه دفعه مثلا یه چیزی می‌شده، یه خبر بد میشنیدم. بعد از حال میرفتم. بعضی وقتا میرم طبقه دوم تو پنجره‌ی مون فیلم بازی میکنم. مثلا یه نفر میاد خبر مرگ مامانم میده. منم میگم چی؟ چی دارید میگید؟ بعد از حال میرم مثلا. فکر کنم فیلم بازی کردنم خوبه. دایم استیناشو بالا زده. داره میره تو حیات. تو راه رو وایسادم. ما منم رفته تاشمز کنه. به سلام میکنم. جوابمو جوابم نمیده. اصلا نگام نمیکنه میره طرف در راهرو که بره تو حیات. یه چیزی گفت که نشیددم گلومون محکم فشار میدم. آب دهنمو به زور غرت میدم. گلومو محکم میگیرم. گلوم درد میکنه. انگار یه حولو گیر کرده تو گلو زنداییم تو اتاق وسطی نشسته پاهاشو دراز کرده بچهشو گذاشته رو پاوش. بچهش خوابیده یه جوری داره نگاه میکنه انگار حالش داره ازم به هم میخوره. میرم جلوی در اتاق جلویی، تو نمیرم. از بیرون ساعت ساعتو نگاه میکنم. نمیدونم چرا فکر میکنم نباید برم تو اتاقا. ساعت یه رو به یکی نصف شبه. من نمیدونم چرا دایم نمیان اینجا زندگی کنن. شدم کم کم بیان. احتمالا منو میذارن بیرون کم کم. هم که اصلا کاری نداره. کاش داداشم بود. مامونم از آشپسخونه میاد بیرون میگه: برو قضیه تو بخور. همینطوری وایسادم. صدای مامور میگه: خجالتم نمیکشه. و چپچپ نگاش میکنه. سنده ایم سرش میندازه پایین. دلم یه ذره خونک میشه. نمیدونم چه حرفایی زدن، چه تصمیمی گرفتن. میخوان چیکار کنن باهم؟ میرم تو حشره خونه. بعضی وقتا دلم میخواد غذا از گلوم پایین نره بی اشتهام بشم. مثلا یه مدت نتونم غذا بخورم. همه دلشون بسوزه برام. ولی هیچ وقت اینجوری نمیشم. چندبار بار خواستم ادوشو دربیارم بیارم، چند روز غذا نخورم افسرده بشم. ولی نمیتونم. حتی یه وعده نتونستم غذامو نخورم. حتی وقتی قهر میکنم از اینکه دارم قضا میخورم خجلت میکشم کشم. میاد تاشپزخونه دست ووش رو با حولله خوش کنه میره. فکر کم شاید دایم بیاد با هم حرف بزنه. نمیگم داییمو دوست دارم یا نه؟ یادم یه حوز داشتیم قبلا و تو حیاطمون. خیلی کوچیک بود تا به سونا میرفتم توش آبتنی میکردم میکردم. ماهی نمیداختیم توش. صبح به خاطر تنی تو حوز از خواب بیدار میشدم یه روز نمیدم کجا رفته بودم با کی رفته بودم وقتی اومده بودم خونمون دیده بودم حوزمون تو حیات نیست. مامانم و دایی‌م نشسته بودن رو می می‌خندیدن به من. من وسط حیات وایستاده بودم داشتم به جایی که حوزمونو رو می نگاه میکردم. دایی برده بودن داخته بودش ته باغ اون ور اوتوبان فکر کنم. نمیدونم چرا. آهان، یادم اومد با کی رفته بودم بیرون اون روزی که حوزمونو رو انداخته بودن ته باغ. سانداییب منو و برده بود بیرون. خاطره‌هامو آوردم طبقه دوم تنهایی خوابیدم اینجا. مامانم نمی‌مید چیزی ازم بپرسه. فکر کردم شاید بیاد بپرسه بهش بگم. طبقه دوممون جن داره همه صدای پچ پچ میشنوم نمیدونم چه تصمیمی گرفتن برام ساعت هفت نیم صبح نشستم تو جام سرم و گرفتم تو دستام دارم حساب میکنم ببینم امروز چندشنبه است. امروز جمعه است. سرم داره پامیشم آروم از پله ها میان پایین در همه اتاقا بازه صدای پنکموۨ میاد داریم جلوی پنکه میخوابه همیشه خوابیده تو اتاق جلویی جلوی, جلوی شیشهای رو به هگات زنداییمم خوابیده تو همون اتاق کیمیا دخترده بیدار شده نشسته بالا سر مامانش داره با یه چیزی تو دستش بازی میکنه من میترسم بره طرف پنکی دستش رو ببره طرفش مامانش خوابه هیچ وقت با صدای بچهش بیدار نمیشه یه خورده وامیستم ببینم کیمیا میره طرف پنکی یا نه مامانم خوابیده تو اتاق وسطی زیر تاقچه داره خور و پف میکنه میرم تو اتاق عقبی در رو آروم میبندم در میکنم. من یه رو چند چندتا از بالیزاو میزارم تو کیف مدرسم دوباره درشون میارم میزارم ایشون سر ها شناساهامو میزارم تو کیفم دستام میلرزه یخ کرده دستام آروم در اتاقم رو باز میکنم یکم وامیستم ببینم کیمیا داره چکار میکنه پشتش به منه داره از پشتی اتاق میره بالا از خونه میام بیرون هیچکس تو کوچه نیست هیچکس تو خیابونمون نیست میرم طرف ته خیابونمون که یه باجه تلفن هست از ور خیابون دو تا مرد دارن میرن طرف ایستگاه اتوبوس، بلند بلند دارن حرف میزنن. کفشم پامو میزنه سنگریزه توش رفته فکر کنم. میرسم به باجه تلفن. از تو کیفم کاغذی رو که سُرایا نامزد دوست رضا رو نوشته بود در میارم. شماره رو میگیرم. الو. سلام. ببخشید منزل پوروطن؟ من با سُرایا خانم کار دارم. با سُرایا خانم؟ دوستشم. پری. پری. میشه بیدارش کنین؟ کار واجب دارم. سلام یا خانم خوبین بیرونم از بیرون زنگ میزنم ببخشید خب مجبور شدم هیچی ببخشید شما شماره خونه آقا رضا رو دارین هیچی نشده دارین شمارهشو میشه از نامزدت بگیری به من بدی خب من دیگه زنگ نمیزنم خونتون میشه خودت بهش زنگ بزنی تو رو خدا کار واجب دارم یه پیغام از صرف من بهش بدین میگید پیغاممو بهش تو رو خدا بگید تا یه ساعت دیگه بیاد کتابخونه پارک شهر من میشینم رو به روبروی کتابخونه همون نیمکتایی که کنار اتاق ثبت حتما بهش میگید پیغاممو بگید حتما بیاد کار واجب دارم من دارم میرم پارک شهر اگه میشه الان زنگ بزنید باشه ببخشید باشه دستت در نکنه ببخشید خدافظ میرم توی ایستگاه اتوبوس اونور خیابون. خدا کنه دختر پیغامامو برسونه. جمعه ها اتوبوس خیلی دیر میاد. هیچکس کس توی ایستگاه نیست. می‌ترسم ای که بیاد منو ببینه اینجا. مثلا آقا صابر بخواد بره مغازشو باز کنه ولی اول بیاد اینوری همینطوری. اما امروز جمعه صبح هم چه تعطیله. شاید هم بخواد بره نون بگیره. اگه از این طرف بخواد بره منو میبینه که توی ایستگاه وایسادم. جمعه‌مون نون بربری می‌خوریم. حوسه بربری کردم. اگه تا این بیاد ببینه منو میاد همین همینطوری از روسنی میگیره میکشونه منو تا خونه دیو افش هم همون همونطوری آرومه مثلا انگار یک گوسفند خریده داره میبره واسه نظری چیزی قربونی کنه منم بعبا میکنم میبرتم خونه آقا صابر صدا میکنه که سرمون ببره آخه آقا صابر گوسفندم قربونی میکنه تو فامیلامون هر کی بخواد قربونی ببره آقا صابرو صدا میکنن اگه گوسفند به دنیا میومدیم حتما الان بهتر بود دارم به این چیزا فکر میکنم. اتوبوس میاد سوار میشم. خیلی خلوته. خودو کنه رضا بیاد. سرمو تکی میدم به شیشه اتوبوس. دیگه بر نمیگردم خونمون. یه که اشک از چشمم میریزه رو, رو سریم اگه برگردم حتما میکشنم. حالا که اینجوری اومدم بیرون اگه برگردم مامانم با روسریم خفهم میکنه. دایم کمکش میکنه. اگه رضا نیادم بر نمیگردم دیگه. میرم ژاپن پیش داداشم. یه جوری میرم بالاخره حتی میرم اونجا مرده میسیدونم ولی دیگه من نمیگردم خونه با یه ژاپنی هم ازدواج میکنم فکر کنم جاپونی و مهربونن میرم ژاپن دارم فکر میکنم نکنه کیمیا بره طرف پنکه